هر روز بعد از ظهر وقتی هوا آنقدر تاریک می شد که بهانه به دست تیم بازنده میافتاد تا بعضی توپ کشیده انتهای زمین یا توپهای کوتاه و هوایی را نگیرد ما کمانچی ها بادی به غقب میانداختیم و خودمان را با همه وجود به استعداد داستانگویی رئیس میسپردیم. در آن وقت ما که معمولا سرسانه میشنناختیم و چشم دیدن یکدیگر را نداشتیم برای رسیدن به سندلی هایی که نزدیک رئیس بود با مشت یا داد و قال به جان هم میافتادیم. اتوبوس دو ستون سندلی های موازی آکنده از کاه داشت. در ستون سمت چپ سه سندلی اضافی بود. یعنی بهترین سندلی های اتوبوس که متحرک بود و تا نیمرخ راننده پیش می‌رفت. وقتی ما سر جای ما مستقر می‌شدیم، رئیس از اتوبوس بالا می‌آمد. آن وقت پاهایش را از هم باز می‌کرد. روی رو به ما مینشست و با صدای گرهدار اما گیرا و مردانه فصل تازهی را از داستان مرد خندان برای ما تعریف میکرد. همین که داستان را شروع میکرد ما سراپا گوش میشدیم. مرد خندان داستان دلخواه ما ها بود که ابعاد کلاسیک هم میتوانست پیدا کند و شاخ و برگ زیادی به هم بزند. اما ویژگی امدهش این بود که میشد آن را به هر جا برد. یعنی همیشه می توانستیم داستان را با خودمان به خانه ببریم و مثلا وقتی توی وان همان بودیم و آب داش خالی میشد به آن فکر کنیم. مرد خندان را که فرزند یک یک دانه یک زوج مبلغ مذهبی ثروتمند بود در کودکی راه چینی رو بوده بودند. وقتی زوج مبلغ مذهبی ثروتمند حاضر نشدن پول آزادی پسرشان را از نظر رعایت اصول مذهبی بپردازند راهزنها که ظاهرا خاطرشان آزارده شده بود، کله بچه را لایه گیره نجاری گذاشته بودند و احرام مخصوص را چندین بار به راست پیچانده بودند. موضوع این تجربه منحصر به فرد، انسانی از کار درآمد با سری بیمو و تخم مرغی شکل که توی صورتش به جای دهن یک هفره بیزی شکل بزرگ زیر دماغ داشت. دماغ هم از دو سوراخ گوشت آورده تشکیل میشد. از این رو وقتی مرد خندان میخندید، حفره زشت و چندشاور زیر دماغ مثل یک جور حفره حیولاوار همونطور که میبینم باد میکرد و جمع میشد. رئیس طرز نفس کشیدن مرد خندان را به جای دادن نمایش میداد. قریبه ها از دیدن چهره وحشتناک مرد خندان پس میافتادند. آشناها از او دوری میکردند. اما چیز عجیب این بود که راهزنها به او اجازه میدادند تا وقتی صورتش را با نقاب قرمز رنگ رو رفته ای از گلبرگهای خشخاش میپوشاند دور و اطراف پایگاهشان پلاس باشد این ماسک هم راهزنها را از دیدن چهره پسرخواندهشان در امان نگه می داشت و هم اینکه سبب میشد زاغ سیاهش را هر جا بود چوب بزنند چون تحت شرایطی بوی تریاک از او بلند بود هر روز صبح مرد خندان از انزوایش که اندازه نداشت دزدانه به جنگل انبوه نزدیک نهانگاه راهزنها پا می گذاشت. در راه رفتن ظرافت گربه ها را داشت در آنجا با بسیاری از انواع جانورها مثل سگ موش سفید عقاب شیر مار بها و گرگ طرح دوستی میریخت از این گذشته ماسکش را بر و با آنها به آرامی و لحنی خوش و با زبان خودشان حرف می‌زد. آنها او را زشت به حساب نمی‌آوردند. دو ماهی طول کشید تا رئیس داستان را به اینجا رساند. از این به بعد به بیشتری در قسمتهای داستان میگنجاند. به این منظور که رضایت خاطر کمانچی ها را فراهم کند مرد خندان این شم را داشت که از تحتوی هر چیزی سردر در و چیزی نگذشت که اسرار سوداگری راهزنها را که خیلی با ارزش بود کشف کرد این اسرار به نظرش پیش پا افتاده آمد و خیلی سری خودش نظام کارسازتری پیریزی کرد در ابتدا دامنه عملیاتش محدود بود و به طور مستقل در همان دور و اطراف روستای راهزنها به قارت راهزنی و اگر چاره دیگری نبود آدم آدمکشی دست میزد. چیزی نگذشت که شیوه های زیرکانه جنایت هایش همراه با عشق منحصر به فردش به جوان مردی، جای پرشوری در قلب ملت برای او باز کردند. چیز عجیب این بود که پرورش دهنده های او، یعنی راهزنهایی که از روز اول او را به جنایت کشندند، جزو آخرین کسانی بودند که از کارهای چشمگیر او با خبر شدند. و وقتی بو بردند، نزدیک بود از حسادت کور شوند. آنها به ستون یک از کنار تخت مرد خندان رد شدند. و با این خیال که موفق شدند با داروی مخدر او را به خواب امیغ فرو برند، دشنههایشان را در تن موجود زیر شمد فرو کردند. بعد روشن شد که قربانی مادر رئیس راهزنها یعنی زنی بد با و گیر بوده. این اتفاق تنها سبب شد که راهزنها به خون مرد خندان تشنه تر شوند. و او دست آخر مجبور شد و دارادسته آنها را توی مقبره عمیق اما بسیار خوش ترکیبی زندانی کند. راهزنها به چاک میزدند و تا حدودی اسباب زحمت او میشدند. اما او در پی کشتن آنها نبود. من در خلق خوی مرد مردخندان یک جور دل سوی می دیدم که کم کم داشت مرا از کوره به در می برد. چیزی نگذشت که مرد خندان مرتب از مرز چین میگذشت و راهی پاریس فرانسه می شد. و در آنجا نهوغ درخشان اما فروتنانش را به رخ مارسل دوفارش کارگاه بین المللی مشهور و خرابکار بزلگو میکشید و لذت می برد دوفارش و دخترش یعنی دختر جذابی که عاشق پوشیدن لباس مردانه بود دشمنان سرسخت مرد خندان از آب در آمدند گهگاه سعی می کردند در باقی سبز نشانش بدهند و مرد خندان برای تفنن محض تا نیمه راه با آنها می رفت بد می میشد و اغلب کوچکترین نشانه به درد بخوری از فوت و فن فرارش به جا فقط گاهی یادداشت نیشدار کوتاهی هاکی از خداحافظی از گذرگاه های فازلاب پاریس پست می کرد که دو بیدرنگ توی چکمهش پیدا می کرد دو فارج و دخترش بیشتر وقتشان را به شلب شلوب کردن توی فازلاب پاریس می گذارندن. مرد خندان به زودی صاحب بزرگترین ثروت شخصی روی زمین شد. بیشتر این ثروت را به طور ناشناس به راهبهای یک دیر محلی اهدام می کرد. اینها ریازت کشهای بودند که زندگیشان را وقف تربیت سکهای پلیس آلمانی می آنچه را از ثروتش باقی می ماند تبدیل به الماس می کرد و بدون هدف توی سردابه های زمور را در دریای سیاه پایین می فرستاد. نیازهای شخصیش اندک بود. فقط با برنج و خون اقاب گذران می کرد و در ساحل طوفانی تبت توی کلبه کوچک زمین ورزش زیرزمینی و میدان تیراندازی داشت زندگی میکرد. چهار همده است که اطاعتی کرکورانه داشتند کنارش بودند. یک گرگ جنگلی چربزبان به اسم سیاهبال، یک کتوده دوست داشتنی به اسم اونبا یک مقل اولپیکر به اسم هونگ که زبانش را سفید پوست سوزانده بودند و یک دختر ترگل ورگل درگی آسیایی اروپایی که به خاطر عشق ناکامش به مرد خندان و علاقه قلبیش به حفظ جان او گاهی تمایل نسبتاً زیادی به جنایت از خود نشان میداد مرد خندان دستورهایش را از پشت توری ابریشمی سیاهی صادر میکرد و هیچکس حتی کوتوله دوست داشتنی حق نداشت چهره او را ببیند من نمیگویم که قصد دارم داستان را کش بدهم اما می توانم ساعت خواننده را به زور هم شده در فاصله پاریس و چین ببرم و برگردانم اتفاقا من مرد خندان را از اجداد خیلی خیلی برجسته خودم میدانم. یعنی کسی در حد رابرت ایلی قهرمان ملی جنگ های داخلی امریکا با آن مردانگی هایی که توی میدان کارزار از خود نشان داده و این تصور من در قیاس با تصورم در 1928 هیچ است. در آن وقت من نه فقط خودم را فرزند بلا فصل مرد خندان می‌دانستم، بلکه تنها بازمانده او به حساب می‌آوردم. من در 1928 به هیچ وجه فرزند پدر و مادرم نبودم، بلکه خودم را شیادی تصور می‌کردم که در کارهای شیطانی نادرستی را روان می‌داند. و منتظر بودم که کوچکترین اشتباهی از جانب آنها سر بزند تا بهانه پیدا کنم پاپیش بگذارم و بیشتر بدون خشونت. اما اگر پایش هم میافتاد چه باک هویت واقعی خودم را اعلام کنم از آنجا که میل نداشتم قلب مادر قلابیم بشکند نخشه کشیدم که او را به مناسبت یک جور موفقیتی که از چگونگیش بیخبر بودم اما ترجیح می دادم شاهانه باشد به تشکیلات زیرزمینی خودم بکشانم. اما در 1928 کار اصلی من این بود که سرم به کار خودم باشد. کاری به جنگولک بازی دور اطرافم نداشته باشم. دندانهایم را مسواک کنم، مویم را شانه بزنم و به هر قیمتی شده خنده کری و طبیعیم را لاپوشانی کنم. راستش من تنها فرزند بازمانده و قانونی مرد خندان نبودم. ما بیست و پنج کمانچی عضو باشگاه یا بهتر گفته شود بیست و پنج فرزند بازمانده و قانونی مرد خندان بودیم که همه به صورت ناشناس توی شهر گشت می‌زدیم و آتش می نگهبان‌های نگهبانهای آسانسورها را دشمنان بزرگ بالقوه به حساب میآوردیم. بدون جنباندن لب، اما روان توی گوش سکهای اسپانیل تربیت شده نجوا می کردیم. با انگشت سبابه، پیشانی معلمهای حساب را هدف قرار میدادیم. و همیشه چشم به راه بودیم. چشم به راه یک فرصت جانانه تا در قلب نزدیکترین آدم خونسرد، وحشت و تحسین بیاورینیم.